سلام خدا آن یگانه مهربان سلام بر شما دوستان شما همراهان شبانی برمیه هزار افسان شب شما بخیر و کنید افثانه ها تو خونه ها پای کرسی ها توی قهوه خونه ها و در گوش و کنار هر مملکت و از نسلی به نسلی دیگه منتقل شدن شبای سرد زمستون و کرسی های گرم و صدای پیر و شکست، و دلنواز و جذاب که ما رو به دنیای پر رمز و راز افسانه به دنبال خودش میکشونه این خاطره ایه که در کول بار خاطرات هر کدوم از ماها در هر کجای این جهان که باشیم با رنگ و بوی خاص و با ویژگی فرهنگی خاص جایی داره چه خاطره خوش و ارزشمندی اما امشب میخوام افسانه ای رو از سرزمین ارمنستان براتون نقل کنم به نام افسانه مرد روستایی و ارباب تمکار برگرفت از کتاب قصه ها و باورها گردآوری آی دکتر احمد بیانی که در قالب تنز برشته تحریر در اومده امیدوارم که از نقل این افسانه شما لذت ببرید. روزی روزگاری در سرزمین ارمنستان روستایی وجود داشت که اهالی اون روستا خیلی زحمتکش بودند. بودن اما هرچی بیشتر کارو تلاش میکردن کمتر چیزی آیدشون میشد. چرا که ارباب روستا حق و حقوق اونا رو درست و حسابی نمیداد و بیشتر از توانشون از بنده های خدا این روستاییان کار میکشید یه روزی چند روستایی که از مشقت کار روزانه خسته شده بودن زیر درخت بزرگی نشستند تا کمی استراحت کنن در این موقع یکی از روستاییان شروع کرد به درد دل کردن و گفت اخ دیگه دستم جون نداره از صبح تا شب یه کار میکنم اما همه چیز آید این ارباب زورگو میشه و منو و بچه هم به نون شب محتاجیم روستایی دیگه ای که داشت با روغنی دستاش رو به هم میمالید آهی کشید و گفت زندگی و وضع منم از تو بهتر نیست میبینی که شبا شدت درد دستام خواب به چشام نمید به بعد قوطی کوچیک روغن رو به طرف دوستش راز کرد و گفت بگیر خوب به دست داد بمال. کمی درد و کم میکنه خوب بمالش مرد قوطی روغن رو گرفت و مقداری از روغن رو کف دستاش ریخت و همینجوری که دستاش رو به هم میمالید گفت خیلی دلم میخواد خیلی دلم میخواد یک کسی این ارباب به زورگو و خسیص رو به سزای اعمارش برسونه و حق همه مارو از اون بگیره یکی از رستایان که کمی دورتر از این دو مرد زیر درخت نشسته بود و گوشش به حرفای اونا بود جلو اومد و گفت می‌خاین کاری کنم همین ارباب زورگو و خسیس منو به نهار مهمون بکنه ها؟ دو تا مرد با تعجب نگاهی به هم انداختن و پوزخندان گفتن ارباب؟ <تصفيق> ارباب تو رو به نهار دعوت کنه؟ اون از خساست حتی یک چیکاب آب از ازش نمی رسه. اون وقت بیاد تو رو دعوت کنه اونم برای نهار مرد گفت اما من کاری میکنم که ارباب شخصا از من برای نهار دعوت کنه دوستان مرد روستایی باز هم خندیدن یکی از اونا گفت <تصفيق> اگه ارباب به تو نهار بده من یه جفت دی که دارم به تو میدم دیگری هم گفت بله بله منم تنها بزی که دارم به تو میدم مرد با خوشحالی گفت پس یه گاو و یه بز رو آماده کنین که من دارم میرم سراغ عرباب دو مرد روستایی در حالی که هنوز به ادای دوستشون می‌خندیدن، قدمهای شتابان اونو دنبال کرد مرد روستایی ساعتی بعد به در خونه ارباب رسید لحظه ایستاد فکری کرد و جلو رفت و در خونه ارباب رو کوبید. مرد جوانی در رو روی مرد روستایی باز کرد و پرسید با کی کار داشتین؟ مرد روستایی سینش رو صاف کرد و با قاطعیت گفت من با جناب ارباب کار داشتم مرد جوان پرسید کارتون چیه؟ مرد روستایی با همون لحن قاطع جواب داد یه موضوع خصوصیه که فقط باید با ایشون در میون بذارم مرد جوون چیزی نگفت و رفت و چند لحظه بعد ارباب با هیکل درشت و گوشتالودش در حالی که به ابروهای پرپشتش گره انداخته بود جلوی در اومد و نگاهی به مرد روستایی کرد و تا خاص چیزی بپرسه مرد روستایی تعظیم کرد و سلام بلندبالایی داد ارباب با بی‌حوصلگی و بدخلقی پرسید با من کار خصوصی داشتی مرد روستایی نگاهی به اطراف انداخت و آهسته گفت قربان اینجا دمه در نمیشه اگه اجازه بدین بیام تو و موضوع مهمی رو با شما در میون بذارم ارباب قرولون کنان گفت من حوصله و کسی رو ندارم همینجا بگو موضوع چیه مرد مرد روستایی منمنی کرد و گفت قربان من من, من مشکلی برام پیش می که میدونم شما ارباب با عصبانیت بر سر مرد روستایی فریاد زد مردت مشکل تو رفتی برنامه ها مرد روستایی گفت ارباب آخه آخه توی این روستا هیچ کس به شما سواد و دانش کافی نداره ارباب با اوقات تلخی گفت خب که چی مرد روستایی جلوتر رفت و با صدای آهسته گفت قربان من اومدم از شما سوالی بکنم همین ارباب با اون هیکل درشت و گوشتالودش خودش رو به سختی تکون داد و گفت به بپرس بعد از اینجا برو اصلا حوصله مزاحمت و وروجی رو ندارم مرد روستایی با هیجان گفت اومدم بپرسم به نظر شما یه تیکه تلا به اندازه مشتمن چقدر ارزش داره ها؟ ارباب با شنیدن این حرف گره ابرواش باز شد و آثار خوشحالی توی چهرش نمایان شد و آهسته زیر لب گفت تلا حتما این مرد روستایی تک تلا پیدا کرده وگرنا این همه راه برای گرفتن جواب این سوال به اینجا نمی اومد؟ مرد روستایی پرسید قرمان شما شما دارید زیر لب ارزش اون طلا رو حساب میکنین؟ ارباب به خودش اومد و بعد گفت نه نه نه نه نه نه آخه در که نمیشه ارزش یه تکه تلا اونم به اندازه یه مشت تا رو محاسب کن بیا بیا بریم توی خونه با هم داریم مورد صحبت میکنیم بیا ارباب که فکر میکرد این مرد روستایی گنجی پیدا کرده پیش خودش نقشه کشید هر جوری شده اون طلا رو از چنگ مرد روستایی در بیاره خلاصه ارباب مرد روستایی رو به گرمی و با خوشرویی به داخل خونش دعوت کرد مرد روستایی وارد خونه ارباب شد با نگاه خودش کنجکاوانه همه جا رو برانداز کرد تو گوش و کنار خونه اشیاء قیمتی زیادی به چشم میخورد. مرد روستایی که تا به حال خونهی به این بزرگی و مجللی ندیده بود به ارباب گفت واقعا خونه مجلل و زیبایی دارین ارباب چاپلوسانه گفت قابل شما رو نداره دوست عزیز بله یک کمی بزرگ و مچلله مرد روستایی گفت من همیشه داشتم از دستی خونه شما رو ببینم آخه تعریفای زیادی درباره اون از زبون مردم روستا شنیده بودم ارباب با نارتی گفت پاور کنید من هر روز تسلیم میگیرم یه روزی تمام مردم رو به خونم دعوت کنم و حسابی از اونا پذیرایی کنم ولی خب خودت میدونی که اداره کردن روستا و رسیدگی به امور مردم چه کار وقتگیریه جوان مرد روستایی در دل به حرف ارباب خندید و بتوندی گفت بله بله بله بله البته البته البته ارباب مرد روستایی رو به نشستن روی کاناپه دعوت کرد و گفت راحت باش اینجا اینجا خونه خودته مرد روستایی آروم روی کاناپه نر نشست و به ارباب گفت بالاخره نگفتیم یه تیکه طلا و مشت من چقدر ارزش داره ارباب نگاهی به مشت مرد روستایی انداخت و در دل اندزی مشت رو بررسی کرد و بعد با خوشحالی گفت چرا اینقدر عجله داری مرد جوون همین حالا جواب سوالت رو میدم اما بهتره یه قدری استراحت کنی آخر راه زیادی اومدی خسته ای اصلا بهتره بگم یه لیوان شربت خنک برات بیارن چطوره میل دارین مرد روستایی که خیلی تشنه بود گفت فرقی نمیکنه فقط خنک باشم و با فورا به یه مرد جوون اشاره کرد و بهش گفت هرچه زودتر یه شربت خنک برای مرد روستایی بیاره مرد جوون رفت و چند لحظه بعد با شربت از مرد روستایی پذیرایی کرد مرد روستایی یه نفس شربت رو سر کشید و گفت آخه خیلی تشنه بودم دست شما درد نکنه ارباب خنده کوتاهی کرد و گفت نوش جانت دوست نوش جانت و بعد به مرد جوان که سینی به دست در کنار اونها ایستاده بود اشاره کرد که اونها رو تنها بذاره مرد جوون هم تعذیم کرد و و مرد روستایی رو تنها ارباب و مرد روستایی که تنها شدن مرد روستایی دوباره از ارباب پرسید قربان براخره یتی که به من نگفتیم یه تیکه تلا و اندازه مشتمن چقدر ارزش داره ارباب به سختی روی کناپی نرمش شد شده گفت آخ مثل اینکه که خیلی عجله داریم به نظر آدم کمتاقتیم یا اینطور نیست مرد روستایی گفت شاید ولی خب نمیخوام بیشتر از این مزایم شما بشم آخه شما کارای زیادی ارباب توی حرف مرد روستایی پرید و گفت چه کاری مهمتر از گپ و گفت با دوستان عزیزی مثل شما باور کنید همیشه آرزو داشتم فرصتی پیش میومد تا با تک تک مردم روستا صحبت کنم به درد دلاشون گوش بدم ولی افسوس افسوس که اداره امور مردم و رسیدگی به مرد روستایی که دیگه از دست درویی و های ارباب خسته شده بود توی حرف ارباب پرید و گفت بله بله بله میدونم میدونم شما اصلا وقت این کارا رو ندارین ارباب به مرد روستایی نگاهی کرده با خوشحالی گفت آه، چه خوب شما موقعیت و حتی احساسات یه منو خوب میفهمین متشکرم دوست عزیز متشکرم مرد روستایی بتوندی از جاش بلند شد ارباب با توجه پرسید کجا ما که هنوز در مورد اون طلاها با هم صحبت نکردیم مرد روستایی گفت باشنره یه وقت دیگه اینجوری شما هم فرصت بیشتری داریم ارباب از جا بلند شد و آروم مرد روستایی رو سر جاش نشوند و گفت خواهش میکنم بنشینین من نیازی به فکر کردن ندارم الان ارزش اون تلا رو براتون محاسبه میکنم زیاد طول نمیکشه مرد روستایی گفت اگه اجازه بدید برم و یه وقتی دیگه مزاهمتون بشم ارباب خندهیای کرد و چابلوسانه گفت <تصحیح> چه مزاحمتی و بعد دی پرسید خب گفته یه تکه به اندازه یه مشت اونم مشت تو چقدر زشتره ها سوالت این بود درسته؟ مرد روستایی منمنین کرد و گفت اه اه بله قربان بله بله ولی بله اگه اجازه بدین من برای جواب اون یه وقت دیگه بیام آخه آخه الان وقت نهاره و شما باید نهارتون رو میل کنین منم باید به خونه برگردم و بعد از خوردن و نهار خدمت شما خواهم رسید ارباب گفت مشکل تو نهار من دوست عزیز آره چقدر تعارف میکنی معلوم هنوز من خوب نشختی مگه من میذارم مهمونم شکم گرسته پاشو از این در بذاری بیرون نه نه, نه نه نه نه نه این خسلت من نیست شما دوست عزیز من این و باید نهار رو با من صرف کنی مرد روستایی مکسی کرد و گفت آخه آخه چجوری بگم رازی به زحمت شما نیستم ارباب گفت که زحمتی ببینم نکنه فکر میکنی توی یه خونهی من یه لقم قضا برای خوردن تو پیدا نمیشه ها و قبل از اینکه مرد روسهای چیزی بگه گفت همینجا با هم نهار میخوریم و بعد درباری تلا با هم صحبت میکنیم خوبه مرد روسهای گفت حالا که اینطوره یه سوالی دیگه هم داشتم ارباب با خوشرویی گفت چه سوالی هر سوالی داری من با کمال میل پاسخ میدم مطمئن باش دوست عزیز مطمئن باش مرد روستایی با صدای آهسته که انگار نمیخواد کسی صدای اونو بشنوه گفت شما فکر میکنین یه تیکه طلا به اندازه سر من چقدر ارزش داره ارباب از شنیدن این حرف بیشتر به تمه افتاد دیگه براش تردیدی باقی نمونده بود که مرد روستایی گنجی پیدا کرده اون با خوشحالی گفت آه اونم بد میگم ولی اول اجازه بده نهارمون رو میل کنیم اجازه میدی مرد روستایی که سخت گرسنه بود و در دل به کاری ارباب میخندید با خوشحالی گفت خواهش میکنم هرچه شما بفرمید و ارباب فورا دستور داد خدمتکار جوان نهار را آماده کنه چند لحظه بعد بوی مطبوع انواع غذاها توی فضای خونه ارباب حسابی پیشی بعد از صرف غذا ارباب مرد روستایی نزدیک شد و آهسته گفت دوست عزیز الان وقت شکست و بپرسم موضوع تلاها چیه؟ اصلا چطور دوتایی با هم بریم و تلا را از نزدیک ببینیم مرد روستایی که حسابی شکمش سیر شده بود با آسودگی کامل سری تکون داد و گفت بدون تلا ارباب خندهی کوتاهی کرد و گفت <تصفيق> عجب نمیدونستم اهل مزاح هم هستیم دوست عزیز همون طلاهایی که به اندازهٔ مشت و سر توه مرد روستایی نگاهی به ارباب انداخت و گفت قربان <تصفيق> من هیچ خبری از اون طلاها ندارم ارباب با عصبانیت و خشم از جا بلند شد و فریاد زد خبر نداری مرد روستایی به آرامی گفت نه هیچ خبری ندارم ارباب که خون جلوی چشاش رو گرفته بود توی چشای مرد روستایی زل زد و با خشم گفت مردک دروغ گفتی مرد روستایی گفت نخور من هیچ دروغی نگفتم من فقط میخواستم بدونم اگه روزی روزگاری صاحب یه که طلا به و مشتم و به اندازه سرم شدم اونا چقدر ارزش دارن همین صدای فریاد ارباب تمام خونه رو به لرزه در آورد اون در حالی که از شدت عصبانیت تمام بدنش میلرزید فریاد میزد می میکشمد ابله و بعد به طرف مرد روستایی حملهور شد مرد روستایی به سختی خودش رو از دست ارباب نجات داد و با ترس و شتاب به طرف در خروجی دویید و به سرعت از اونجا دور شد تا چه زودتر تمام ماجرا رو برای دوستانش تعریف کنه افسانهٔ مرد روستایی و ارباب کار رو از سرزمین ارمنستان براتون نقل کردم در این افسانه تضاد طبقاتی مطرح شده و به درویی و نیرنگ طبقه مرفه که ارباب نمادی از اونه برای سوجویی از صفای طبقات زحمتکش اشاره شده و در این حال به هوشیاری و قابلیت طبقی فروده هست هم اشاره داشته در این افسانه ها نکات عبرتآمیز ارزشمندی وجود داره که قابل تعمله امیدواریم همواره گنجین های گرانبه های رو پاس بداریم و اونا رو حفظ کنیم برامه کار مشترکی بود از نویسنده و سردبیر زینت سالح پور، ویراستار سهیلا کریمی اجرا مهران دوستی سدابردار هیدر صفدری اسکوی تغییرکننده زهرا عبدالله زاده تا افسانه دیگر بدرود